سلام دوستان همراه کانال هزار افسان، امیدوارم حالتون خوب باشه از کتابی که مشخصاتش ذکر شد داستانی رو بهتون می میکنم به نام شاه دخت پنهان در زیر زمین زمانی پادشاهی زندگی میکرد که سروتی بیحساب داشت وقتی از دنیا رفت میراسش میونه سپسرش قسمت شد دو پسر بزرگتر پیوسته دنبال ایشونوش بودن. پس میراث به دست رو پس از مدتی به باد دادن و دیگه چیزی براشون نموند و بینوا شدن. کوچکترین پسر برعکس دو برادر از سهم خودش به خوبی استفاده کرد. اون با دختری ازدواج کرد. با گذشت زمان صاحب دختری بسیار زیبا شدن. وقتی دختر بزرگ شد به دستور پدر براش اقامتگاهی بزرگ در زیر زمین ساختند. پس از اتمام ساختمان زیر زمین به دستور اون معمار رو کشتند. بعد تموم درای اقامتگاه رو به روی دختر بست و پیک هایی به گوشه و کنار جهان فرستاد که هرکس بتونه دختر پادشاه رو پیدا کنه اونو به همسریش در خواهد آورد. اگه شخص دابطلب نتونه از پس این کارا بر بیاد کشته میشه. بسیاری از جوونا به جستجو برومدن اما جون خودشون و بر سر این کار گذاشتن پس از اینکه بسیاری جون خودشونو از دست دادن سر و پسری جوون و بسیار زیبا که آدم از دیدنش سیر نمیشد و بسیار باهوش پیدا شد اون اشتیاق زیادی برای یافتن شاه دخت نشون داد برای شروع کار نزده چوپان رفت و خواهش کرد تا اونو تو پوست گوسفندی با پشم طلایی فرو کنه و گوسفند بدلی رو نزد پادشاه ببره رمهدار به طریقی فریفته شد و تقاضای پسر رو برآورده کرد پس پوستی با پشم طلایی دست و پا کرد جوان پوست به تن کشید و چوپان اونو دوخت به گوسفند بدلی آب و غذا داد و اونو نزد پادشاه ب پادشاه با دیدن گسفند پشتلایی از چوپان پرسید، گوسفندو به من میفروشی؟ چوپان جواب داد، نه، پادشاه ها نمیفروشم، اما اگر از اون خوشتون اومده، اون رو سه روز پیش شما امانت میذارم، پس از سه روز باید اون به من پس بدید. پادشاه قبول کرد، اون گوسفندو به اقامتگاه زیبای زیرزمینی برد. اون از چندین اتاق عبور کرد بعد به دری بسته رسیدن. پادشاه فریاد زد باز شد تار تا را زمین در باز شد اونا از چند اتاق دیگه گذشتن و باز به در بسته دیگه ای رسیدن. پادشاه گفت: باز شد سرار تا را زمین و در مثل در قبلی باز شد اونا پا به کاشونهی گذاشتن که شاه دخت اونجا بود. کف و اتاق، دیوارها و سقف از نقره بود. پادشاه فرزندش رو در آغوش گرفت و گوسفند رو به اون داد. این کار باعث شادمانی بیش از حد شاه دخت شد. اون گوسفند رو نوازش کرد و سر به سرش گذاشت و با اون بازی کرد. پادشاه گوسفند رو پیش دخترش گذاشت و بازگشت. شب شد، پسر جوان از پوست بیرون آمد. شاخ دخت که اونا بسیار زیبادید مهرش به دلش نشست. بعد از اون پرسید، چرا خودتو توی پوست گوسفند کردی؟ جوان جواب داد، افراد زیادی به جست و جوت بر اومدن. اونا وقتی نتونستن پیدات کنن، جونش نو بر سر این کار گذاشتن. من به فکر چاره افتادم و اون حقه رو سوار کردم و به سلامت نزدت رسیدم. شاهدخت با شگفتی گفت کار تو خوب انجام دادی اما باید بدونی که کارت هنوز تموم نشده چون که پدرم منو و ندیمه همو به اردک تبدیل خواهد کرد. سپس از تو میپرسه کدوم یک از این اردک ها شاهدخته. برای اینکه منو تشخیص بدی سرمو کج میکنم تا پرهامو پاک کنم. اینطوری منو خواهی شناخت. سه روز گذشت و اون دو در کنار هم اوقات رو به شادی گذروندن. روز سوم چوپان به قصر اومد و گوسفندش خواست. پادشاه به اقامتگاه زیرزمینی که مثل یک قصر زیبا بود رفت تا گوسفندو بیاره. شاه دخت خیلی ناراحت شد. اون گفت که تو این سه روز به حیبون خیلی عادت کرده. اما پادشاه گفت نمیتونم اونو اینجا بذارم. چون چونکه امانته اون گوسفند و دو به چوپان داد همین که از قصر دور شدن جوون از پوست گوسفندی خود بیرون اومد اون به قصر رفت و به پادشاه گفت سرورم ووسسه تموم وجودم و فرا گرفته و فکر می میتونم دختر تو پیدا کنم پادشاه با دیدن جوون زیبا با مهربانی گفت پسرم دلم به جوانیت میسوزه این کار سخت تا کنون جونه خیلی ها رو گرفته. میترسم که تو نیز جون تو بر سر این کار فدا کنی. اما پسر جوون جواب داد پادشاها، ها من تموم خطرا رو به جون میپذیرم یا اونو پیدا میکنم یا جونو از دست میدم. اون تو قصر دو وان مود به هر گوشه ای سرک کشی به هر جا که می رفت پادشاه هم کنارش بود. سرانجام خود رو به دری بزرگ رو به پادشاه کرد و گفت حتما برای باز شدن در کلمه رمز وجود داره. اونو بگو. پادشاه گفت کدوم کلمه؟ شاید میخوای بگم بسته شو، بسته شو. جوان گفت نه، بگو باز شو سار تارا مارتارای زمین. پادشاه ماتش برد اما اون کلمه رو بر زبون راند. در بزرگ باز شد و اونا داخل شدند. پادشاه از شدت خشم زیبیلش رو می جوید. بعد به در دوم رسیدن. با گفتن کلمه رمز در باز شد و اونا پس از گذشتن از چند اتاق دیگه به محل اقامت شاه دخت رسیدن. حالا پادشاه چونین سخن گفت. بسیار خوب، شاه و پیدا کردی. اینک اونو همه ندیمه هاشو به اردک تبدیل میکنم اگه تونستی بگی که کدوم اردک دخترمه، اونو به همسرید در میارم. پادشاه فرن شاه دختر و ندیمه هاشو به اردک تبدیل کرد و اونا رو پیش روی پسر جوان قرار داد و گفت حالا دخترم رو نشون بده. همون موقع شاه دختر طبق قراری که با پسر جوان گذاشته بود پراش و با منقارش پاک کرد. پسر جوان گفت اردکی که داره پراش و پاک میکنه شاه دخته. حالا دیگه پادشاه نمیتونست مخالفتی بکنه. اون دخترش رو به همسری پسر جوان درآورد. اون دو در نهایت خوشوقتی و شادمانی در کنار هم زندگی کردند.